بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على كما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستحديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا و نصلي و نسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الاطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حتا ولا تموتن الا وأنتم مسلمون عباد الله اوصیکم ونفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران گزار و خودم را به تقوای الهی و هشدارداری از گناهان و آلودگی‌های روحی و عمل به فرمان‌های خداوند در همه احوال و شؤون سفارش و دعوت می‌کنم امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و متقیان مقرر بفرماید بحث های ما در مباحث خانوادگی ابتدا به مجموعه ای از اصول و قواعدی پرداختیم که خانواده سالم باید بر اساس آن اصول و روابط استوار شود. اگر این اصول استیگانی که در روابط همسران بیان شد فرهنگ جامعه و خانواده های ما بشود، آنگاه ما خانوادههایی اسلامی، الهی و سالم و تربیت کننده انسانهای بزرگ خواهیم داشت به مقوله دیگری بعد از آن سی اصل پرداختیم گفتیم که تشکیل خانواده و ازدواج سالم از نگاه اسلام دارای نه فلسفه و جهتگیری و هدفگیری است که در خطبه های قبل به آن اشاره کردیم. آنچه که امروز در خطبه اول تقدیم محضر شریف شما خواهد شد، بحث زمین سازی تشکیل کانون خانواده توسط جامعه حکومت و خانواده است. تشکیل خانواده سالم و ازدواج به موقع و درست و به هنگام این مسئولیتی است که اولا متوجه جوان در سنین ازدواج است و سپس سه گروه مسئولند در این مسئله یک عموم جامعه به عنوان یک تکلیف واجب یا مستحب کفایی و دو حاکمیت و دولت و سوم پدر و مادر و خانواده غالب تکالیف اجتماعی اسلام و مسائل اجتماعی اسلام همینطوره اسلام جامعه را هم در سطح عموم جامعه به عنوان یک تکلیف کفایی هم در سطح حاکمیت و دولت و مسئولان و هم در سطح خانواده به وظایف زیادی موظف کرده چون اسلام دین اجتماعی است انسانها همه با عناوین گوناگون در برابر مسائل اجتماعی متعهدند کسی نمیتواند از تعهدهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند یکی از مسائل مهم شکری خانواده های خوب و سالمه ازدواجه های به موقع و بهنگامه به همه در قبال اون مسئولیت دارند و همونطور که اشاره کردم اولاً یک خطاب عمومی وجود داره در همه مسائل فرهنگی و اجتماعی و از جمله در مقوله ازدواج به موقع و به هنگام این خطاب متوجه آهاد جامعه است مثل قصه امر معروف و نحیزمون کرد اولا این خطاب ها برای همه جامعه است بر اساس شرایطی که تبیین شده و بعد نسبت به حاکمیت و سپس نسبت به خانواده در مسئله ازدواج هم و امروز من به همون لایه اول به استناد بعضی از آیات و روایات میپردازم سخن این است که آهاد جامعه و همه مکلفان در یک جامعه در قبال ازدواج به موقع و به هنگام و درست و در قبال چکگیری خانواده های سالم و درست مسئولند هر کسی به قدر توان خود باید ایفای نقش بکنه در اینجا بحث این نیست که دولت و حاکمیت یا حتی پدر و مادر و خانواده و خیشان نه همه آهاد جامعه در حد قدرت و توانشان وظایف گاهی استحبابی و گاهی حتی در حد الزام و ایجاب نسبت به تسهیل شرایط ازدواج و زمین سازی شکلی خانواده دارند خب در این زمینه ما اگر به قواعد و عناوین عامه مراجعه بکنیم قصه قاعده اعانه در بر و تقوای قانون بسیار مهمیه قرآن فرمود تعاون و علال بر و تقوی این خطاب به همه جامعه است میگه همه شما در برابر خوبی ها و نیکی ها و سلامت و سعادت جامعه وظیفه دارید تلاش بکنید در حد توانتون که خوبی ها در جامعه رواج پیدا بکند فرهنگ جامعه یک فرهنگ سالمی بشه این تعاون و علل و تقوا یه قانونی است که یکی از مصادیقش هم اینه که اگر شما در جایی امکان دارید، قدرتی دارید، تلاش بکن که شرایط ازدواج را برای جوانان در ازدواج فراهم بکن. خب ما خوشبختانه در گوشه و کنار داریم عزیزانی که مؤسسه تشکیل دادن، جمع شدن با حساب و کتاب و دقت و ملاحظه همه جوانان زمینه را فراهم می کنند که جوان ها به موقع ازدواج بکنند شرایط را تسهیل می کنند برای اینکه خانواده های خوب و سالم شکل بگیره این از بهترین کارهاست تعاونو علل و تقوا فایده امر معروف نحی از منکر باز در همین زمینه گوییای این است که تلاش بکنید معروف که شکل خانواده سالم است بازدارندگی از فروپاشی خانواده هایی که موجوده این را رو رواج بدید بنابراین ما یک سلسله قواعد عامه فقهی و عناوین کلی داریم که جامعه و همه ما را در حد توانمون و با شرایط لازم به چی فرا به اینکه تلاش بکنید خانواده در جامعه بنیان محکم بشه هم جلوی طلاق و فروپاشی خانواده را بگیرید تا آنجا که در توانتان هست و هم اینکه تلاش بکنید شکل بگیره خانواده سالم و ازدواجهای درست و به موقع انجام بشه و همینطور در آیات قرآن باز ما قانون دیگری داریم این آیه شریفه سوره نصا از آیه 85 که فرمودند من یشفع ف شفاعتا حسنه یکل له نصیب منها و من یش ف شفاعتا سیئه یکل له کفل منها این آیه از آیاتی است که در بحث جهاد وارد شده و شاید شانه نزولش اینه که همه همراه پیامبر بشوید تا پیامبر در معرکه و کارزار تنها نماند وقتی که فرمان جنگ و جهاد آمد رسول خدا را تنها نگذارید اونها که کمک میکنن تا رسول خدا و رهبر الهی در کارزار توفیق پیدا بکنه و تنها نماند میگه خدا به خاطر همین تلاششون کمک میکنه هم که تخریب میکنن در اون عذاب شریکن اما در روایات این آیه 85 سوره نسا تطبیق داده شده بر وساطت در کارهای خیر. میگه کسی که برای کمک به دیگران وساطت درست انجام میده میگه این شریک در اون کار خیره. شما واسطه میشید که کس دیگری برای این فرد کمک بکنه میگه شما در اون ثواب اون کار شما هم شریکی. این همون قانون من سنست سن و تنها حسنه است کسی که سهین بشه در اینکه کار خوبی انجام بشه میگه شما هم در کار خیر اون شریک هستید اون وقت در روایات همین تطبیق داده شده بر بحث وساطت در امر ازدواج میگه شما با اصول درست را زابطه درست واسطه بشو تسهیل بکن که ازدواج انجام بشه در زیر همین این روایاتی وجود داره که میگه این وساطت خیر مقصود از آیه است. این آیه شامل واسطه گری کارهای خوب میشه. اصلش ها واسطه خیر بشید شما کنید ثواب اون خیر انجام دادن کاهش پیدا بکنه. در روایاتی از امیرالمومنین سلام الله علیه ملاحظه بکنید که همین مضمون در اونجا اومده اول تصافات نکاح حتی یجمع الله بینهما یکی از بهترین وساطت ها که مصداق همین آیه من یشفر شفاعتن حسنه است اینه که کسی به درستی رفتار بکنه وساطت بکنه برای این که بین دو جوان در ازدواج وساطت بکنه این بهترین وساطت هاست تا اینکه به نتیجه برسه. این همون مصداقی از اون شفاعته این آیه در بحث جهاد و رزمه ولی مفهوم آن در روایات تعمیم داده شده به هر وساطت در کار اگر کسی وساطت میکنه برای اینکه دو رفیق صلح بکنند کار دیگران گشوده بشه یا ازدواج محدد بشه این همه مثلا این آیه شریفه است و همینطور اون آیه شریفه بسیار مشهور است آیه سیدو سوره نور که و ان که خلعیاما منکم و الصالحين من عبادكم و این ان يكونوا فقراء يقنيهم الله من فضله والله واسع عليم این آیه می خطاب عامه این خطاب عام و تکلیف کفایی است که به همه جامعه متوجه این الان به خصوص دولت و نظام و مسئولین یا خصوص خانواده نیست این اینمون سطح اول تکلیف عمومی است همه جامعه به فراحور تمام خود و با رعایت دقائق و دوابطی که در وساطت هست که بعدها خواهیم گفت باید تلاش بکنم خانواده ها استوار بمانند، خانواده ها درست و سالم شکل بگیرند بینیم که از یک نگاه عمومی فقهی ما مواجه با سلسله از قوائد و عناوین و عدله هستیم که میگه در کارهای نیک وساطت بکنید اقدام بکنید و از جمله در خصوص بحث ازدواج به موقع و درست این یه نگاه عمومی به این تکلیف عام اجتماعی بود برای پایه پایه‌های خانواده سالم و انسان ساز هم که سراغ روایات به طور خاص بیاییم شاید بیش از ده روایت در اینجا وجود داره که تاکید میکنه بر اینکه در برقراری خانواده سالم شما نقش داشته باشید تلاش بکنید وساطت بکنید برای اینکه به موقع جوانها ازدواج بکنند در و شیش هفت اثر هم برای اون شده در یک بیان آمده که الا فمن حضم رئن مسلم انفاق و قیمت ایمتن میگه این بخت خوب یک انسان مسلمان اینه که انفاق بکنه تا یک عذبی ازدواج بکنه یه از خوشوقتی های انسان مومنه طبعا اینجور بساطت های خطرهایی هم داره، گرفتاری هم داره ولی ثوابش هم به خاطر همون سختی هاست در روایت دیگری نقش شده است که چهار گروه خداوند بهشون نگاه ویجه می در اون صحرای قیامت و در اون اوضاع و نفسا میگه چهار تا گروه مورد انایت و نظر خاص به خدا هستند در قیامت هر چی بگیم کم گفتیم ادا زلزله الارض و زلزانه ها اون اوضاع حراسناک و اون وضع بسیار عجیبی که در قیامت همه را در فکر خود فرو می بره و همه در حراس و رنجن میگه چهار گروه خدا بهشون نگاه خاص میرفت من اقال ناد من کسی که ای کرده طرف پشیمانه این سرسختی نشون نمیده میگه باشه پشیمانی من اقاله میکنم فست میکنم در روایات خیلی رو این تحکید شده که آدم پشیمان رو باشه راه بیایید اقاله بکنم دو او اقاس لحفان آدم مستر و گرفتاری رو فریادرسیش میکنه به فریاد آدم گرفتار میرسه اگر شما به فریاد یک آدم وامانده و گرفتار رسیدید این تو پرونده میمونه روز قیامت خدا نگاه خاص به شما می سوم اعتق نسمتا یا اینکه بنده ای رو آزاد بکنه چهارم او زوج عذبا میگه اگر واسطه شدی چرایط فراهم کردی وام، کمک وساطت هر شکلی برای اینکه که جوانی به ازدواج برسه، میگه خدا روز قیامت نگاه خاص به تو میاد کند نگاه خاص الهی در روایت دیگری هم از امام صادف سلام الله علیه آمده که من و وجع کان کانم من یندر الله الیه یوم القیامه این در کافی شریف فعظیب و خصال در هر سه کتاب آمده کسی که وساطت بکنه امکاناتی فراهم بکنه برای اینکه که خانه ای و خانواده ای شکل بگیره خدا روز قیامت نگاه لطف به او می افکند اثر در روایت دیگری از امام کازم آمده است که در زل عرش خدا قرار می گیری. اون که مسسه تشکیل داد صندوق را انداخت شرایط را فراهم کرد برای اینکه نسل جوان به موقع و بههنگام ازدواج بکنن مشمول این میشون خلافتون یا تقلون عرش الله یوم لاظله لاظله. میگه روزی که هیچ سایه ای در اون آفتاب سوزان قیامت نیست چند تا گرروزیره سایه خدا قرار میگیرند. سایه عرش خدا اونها رو پوشش میده اولش رجلون زب،, رجل زب وجه اخا حلمسته آدمی که زمینه فراهم کرده که دیگران به موقع ازدواج بکنند یا آدمی که خدمتی میکنه به انسانها خدمت به دیگران اینقدر ارزش داره و اوکت همه لغو سرن یعنی که اسرار رفیق و دوستش رو سفز میکنه است تو گروه میان در قیامت زیر سایه عرش خدا اونگاه که هیچ کس سایه ای نداره و نعم دیگر بهشتی که در روایات آمده در پیامبر خدا عضرت محمد مصطفی باز دارند که کسی که تلاش بکنه برای بر یک خانواده سالم میگه هر قدمی که در این راه برمیداره به اندازه ارزش یک سال عبادت های او نوشته میشه تصور نکنیم اینها مبالغه است و مجموع این در دوازه نشون دهنده یک ارزش فوق العاد بالا برای وساطت در کارهای خیر و در امر ازدواجه این قانون یک فرهنگ بود باشه البته در خطبه بعد خواهیم گفت اینم مخاطراتی داره ولی زبا باید شرایطی در این وساطت ها بهش توجه کرد ولی اصل این با در فرهنگ عمونی جامعه ما باشه اینکه که آدم ها به خاطر یه مشکلی شانه از دیر این نوع کارهای خیر خالی بکنن این شایسته یک جامعه اسلامی نیست حالا نمونه این اینه که پیامبر خدا شخصا در مواردی واسطه شدن برای برقراری ازدواج یا قصه مفصلی داره جووهی بر که داماد زیاد ابن لبیت شد با وساطت پیامبر خدا جووهی از یمامه آمده بود در کنار پیامبر خدا و جوان کوتاه قد و سیاه ای بود و فقیر و امید به زندگی و این هم نداشت که کسی دعوت ازدواج او و خاستگاری او را پاسخ مثبت بده پیغمبر او را فرستاد برای خاستگاری یکی از افراد سرشناس و پولدار مدینه وقتی که رفت اونا همه تعجب کردن بعد که فهمیدم نظر پیانبر خدایینه اجابت کردند. پیانبر میگه از سوال میکنه که چرا ازدواج نمیکنی میگه من فقیرم ندارم اینجورم اینجورم میکنه میتوان ازدواج میکنم پیغمبر میفرموز که نه افتام بکن و برو اونجا شخصا پیامبر وساطت میکنه و شفاعت میکنه برای اینکه این جوان متدین خوب اما نادار و فقیر ازدواج بکنه. شخص پیامبر اونگوی این حرکته و البته این جوهی بعد ازدواج بسیار موفقی داشت و نهایتاً هم به شهادت رستید امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فهم معارف الهی و عمل به فرمانهای خداوند در همه شعون زندگی انایت و کرامت بفرماید اللهم مغفل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والعنوات اللهم منصر الاسلام و احله وخدل الکفر و احله بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعقيناك الكثار وصلّ اللّربك وانحر إن شانك هو الأبدار صدق الله العلي العظيم أُعْوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى علی امير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سید شباب اهل الجنة وعلى ائمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى و محمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر صاست العباد واركان البلاد وابذان الإيمان وأمان الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه الذين آمنوا اتقو الله و مع الصادقین عباد الله اوسیکم و نفسی الله امیر مؤمنان و پیشوای پاسایان در ادامه سخنان دلنشین و زیبای خود در دعوت به تقوا در خطبه صد و ند و البلاغه به اینجا میرسند و میفرمایند بعد از آن آنکه توصیها به تقوا کردند ابعادی از تقوا را تبیین کردند اما یک هشدار عجیبی اینجا امیر مؤمنان میدهند فما اقل من قبلها و حملها حق حملها این همه گفتیم در وصف تقوا و شما را به پارسایی فرا خواندیم اما بدانید آنان که به درستی حق تقوا را ادا کنند کمند ممکن مراتبی از تقوا در همه باشد اما آنان که حق تقوا را ادا بکنند اندک کرد حیف نیست که ما عمری را سپری کنیم و جز این اندک ها قرار نگیریم اینا قلعه انسانیت و بشریت هستند ما اقل من قبلها و حملها حتی حملها اولائه اقلون عددا اینا کمند ما دارد یک ایم هر جمعه که پای خطبه و نماز می‌نشینیم و در این مراسم پرشکوه شرکت می میکنیم باید تجدید قوا کنیم برای اینکه در این مسابقه تقوا به قله ها برسیم جز اون اندک های آلم بشویم که حق تقوا را رعایت کردن این اندک انسان های به قله رسیده های اون آیه شریفه‌ا و که فرمود و قلیل من عبادی شکرور کمند آدمهایی که حق شکر خدا را ادا بکنند ما که به جمعه آمدیم و در پیشگاه خدا حضور پیدا کردیم اون هم در 40 سالار شهیدان این مسیر معنوی را باید طی کنیم و فحتعو به کم علیه ها و اکدو به کم علیه ها میگه این گوش ها را با سرعت متوجه فرمان تقوی کنید گوشتون را آماده شنیدن این فرمان کنید این فرمان این موج دعوت به تقوی در آیات و روایات و نحجل البلاغه این تنین افکنه این ما هستیم که باید آسیب زدایی بکنیم گوش ها را باز بکنیم پنبه های مادیت را از گوشمون دراریم تا این فریاد را بشنسیم با سرعت گوشتون را به این فرمان بدهیم خدا یا را با اولیاء سوگند میدهیم ما را از انسانهای متقی و پاسفایان واقعی ترار بده خب مقدم مهمانان عزیز و زوار سالار شهیدان از کشورها و مناطق مختلف را گرامی می و همینطور مقدم دانش آموزان عزیز به مناسبت روز دانش آموز و بسیج دانش آموزی در این مراسم پشتکور را گرامی می و عرض سپاس داریم و آرزوی توفیق برای همه بزرگواران به ویجه این عزیزانی که در نماز جمعه امروز حضور دارند. در چند محور من مطالبی را فرستبار اشاره میکنم محور اول عربعین است ما از عربعین غریبانه سالار شهیدان که جاور با اون تنهایی بر سر قبر فرزند رسول خدا نشست و آه کشید و عشق ریخت و از حال رفت عربعین سالار شهیدان از اون نقطه شروع میشه اما حقانیت اربعین و درخشش و فروغ این خورشید کربلا و آشورا چنان بود که از اربعین با اون محدودیت و غربت ما رسیده این به اربعین بالای 20 میلیون جمعیت عاشق و دلباخته این حقانیت راه حسین است این راه جهاد در راه خداست که این جور در تاریخ نورشناسی میکند ارباب این را ما امروز بخوایم تحلیل بکنیم بیانمون عاجز از وقت این پدیده بزرگ بشری است من حالا فهرستوار اشاره میکنم این جور پدیده ای در پدیده های اجتماعی بشر بسیار بسیار کم نظیره در پدیده ای که بالای 20 میلیون جمعیت حضور پیدا میکند از همه مذاهب و ادیان حضور دارند از همه اقوام و نجادها در این راهپیمایی با شکوه حضور دارند از بیش از صد کشور آلم انسانهای دلباخته و شیده آشقانه در این راهپیمایی طولانی شکت می‌کنند. همه گروه های سنی و اجتماعی و طبقات گناگون در این مراسم بسیار پرشوکو و می کنند اون هم در یه راپینایی یک کیلومتر و دو کیلومتر نیست بالای 100 کیلومتر با پای مجروع می با عشق سالار شهیدان نظم این مراسم در زاست خود ملت خود آشقان علبی این نظم رو برقرار کردن حزینه های اون از خود مردم تحمیل می شود و این مراسمی که تاریخی است ها استمرار داشته و عشق و اخلاص شجاعت و ایثار وحدت و انسجام در این قلب های شرکت کننده در این رافمایی موج می زند این پدیده اجتماعی بزرگی است که اون وقتی که زینب کبری قهرمانان فرمود کبکیدک وست از سعیک تبالله لا تمهود کنا اون زن قهرمان به آینده تاریخ اشاره کرد هرچه میخواهید بکنید اما به خدا قسم که ما میمانیم و مشعل آشورا در تاریخ نورفشانی خواهد کرد اون روز جابر با اون حال زار و وضع سخت و دشوار بر قبر حسین افتاد و عشق ریخ اما امروز ای سالار شهیدان ملیون ها عاشق در اونجا گرد شمع تو می شرخند. آنها که هم نیامده اند دلهاشون به عشق تو می تبد السلام علیکه یا ابا عبدالله و علل ارواحلتی حلت به السلام علل حسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین موضوع دوم روز فرهنگ عمومی است مقوله فرهنگ عمومی مقوله بسیار مهمی است و اسلام به ابعاد مختلف اون تاکید داره البته شوراهای فرهنگ عمومی در استان ها و شهرها با هدایت ائمه محترم جمعه و همراهی مسئولان دیگر نقش خوبی ایفا کرده اما به نظر میاد که در حمایت از این شوراها شورای عالی انقلاب فرنگی و مسئولان باید جدی تر باشند. بنده هم بارها از کردم که این شوراها اگر بخواهد نقش آفرین جدی باشه نیاز به یک بازسازی و حمایت بیشتر داره عزیزانمون تلاش میکنن و امیدواریم این حمایت مورد توجه قرار بگیره و فرهنگ عمومی از رعایت حق الناس از حیا حجاب عفاف اینا نکات متعدد و کلیدی است که باید همه جامعه به اون حساس باشن به ویژه ما مردم عزیزمون در آستمه اهل بیت و پایگاه علم و جهاد قوم همه باید روی امر معروف نهی نه از منکر سیانت از عرضش های الهی و رعایت حق و ناس حیاب هجاب احتمام روزفزون داشته باشیم و فرهنگ عمومی نیازمند به عزم است. و اما موضوع استفوم سیزه آبانه فردا سیزه آبانه روز مبارزه با استکبار سال روز تسخیر لانه جاسوسی و روز تبعید امام از قم به ترکیه و روز دانش آموز. ما همه مناسبت ها رو گرامی می اما یک تحلیل کوتاهی از می‌کنم که تره امروز آمریکا تره تکمیل شده نسبت به ترهای شیطانی قبلشون هست و یک عرصه جدیدی رو داره آمریکا ورود می‌کنه کنه اگرچه بی سابقه نیست اما در این ابعاد تازگی داره راهپیمایی فردا در سراسر ایران و در قوم قهرمان باید یک راهپیمایی پرشکوه با حضور دانش آموز، دانشجو، رو، طلبه، روحانی بازاری همه طبقات و با یک فریاد وسار از سالقطت باشه. چرا؟ برای اینکه آمریکا امروز چند هدف را داره دنبال میکنه چند استراچی را داره توی میکنه؟ یک اینکه مغز و اراده ملت ما را از مبارزه خالی بکنه. مسئولین ما را از اون عزم و اراده توهی بکنه برای این نقشه ریختن، برنامه ریختن با هزار هیله و ترفند تلاش میکنن که اراده های ما را از بین ببرند نگاه ما را به استکبار تغییر بدن. حالا هم عواملی دارن که این کار را انجام میدن تریب خورده هایی هستن که در سطوح مختلف این فکر سلحه با دشمن را ترویج میکنن این نقشه که خیلی مفصل طراحی شده براش دو فشار اقتصادی و تداوم تحریم ها سه فشار بر جبهه مقاومت چهار های جدید برای تجزیه کشورهای اسلامی از قبیل اونچه که در کردستان عراق شروع شد و به همدلله شکست خورد و همینطور تحریم های تقویت جبهه مزدورانشون در منطقه و همراه ساختن جبهه اروپایی که همیشه همراهشون بوده برای برداشتن دامه های دیگر اینا استراتی های جدید آمریکاست و تحریم های جدید و بحانه های جدید اینا برجام را نفس کردن تحریم هایی دارن میارن بدتر از دوره قبل تحریم های زنجیره ای که اتوماتیک وار همینجور میره جلو در لیست تحریمهاشون شرکت های جدید آوردن، افراد جدید آوردن، شیوه‌های های بسیار خطرناکتر از قبل اعمال کردند. اینا یک حرکت بسیار جدیدیه و ما و شما و همه دنیا در مقابل یک آزمون جدیده. اروپایی ها که تا به حال راست نگفتند، ما هم مکرر فری به اونها خوردیم، سر یک بزنگا هستند. شما یک عهدی را امضا کردید پای اون باید بیستید نباید همراه بشید با اون جبه استقباری که تا کنون همراه بودید مسئولین ما فرمان رهبری توصیح های مقام معظم رهبری را باید جدی بگیرن، فکر نکنند و دل نبندند به غیر خود و جبه مقاومت و ایمان ملت اینا همراه شما نخواهند شد این آزمون سختیه برای اروپاییها، ولی نباید به این که اینا محفظ بشن ما دل ببندیم. این خبرانی نیست. امریکایی هم های سنگین و پیچیده تری را آوردند. ما اولا باید حوشتار باشیم. مسئولین ما با دیپلماسی انقلابی و جهادی را پیشه بکنن. آگاهی و بصیرت در برابر این سلسله نقض عده را داشته باشند. اروپایی باید به عهد خودشون بایستن ولی ما نباید با اونها تکیه بکنیم فریب بخوریم اعتماد بکنیم و جبهه مقاومت باید منسجمتر بشود و اقتصاد مقاومتی اساس حرکت ماست و باید بر نیروی خودمون تکیه بکنیم سیزه آبان فردا باید ملت ما را با این زنجیره توتیه های جدید آشناتر بکنه از و اراده ما و همه طبقات و جوانان عزیز ما باید استوارتر بشه و استکبار عالمی بفهمد که این ملت بزرگ فریب آنها را نخواهد خورد و با تمام توان و رشادت در برابر همه این توته ها به فضل خدا خواهیم ایستاد فردا روزی است که دانش آموزان غیور و عزیز ما، دانشجویان رشید ما، طلاب سرفراز و مقاوم ما و همه ملت ما در یک آزمون جدید در صحنه مبارزه با دشمن و تحکیم مبانی انقلاب ان الله حضور پیدا خواهد کرد و من نکته‌ای هم در پایان اضافه می‌کنم در خصوص مسائل پزشکی قوم، مراجعات همیشه زیاد ما تقدیر و تشکر میکنیم از همه اقداماتی که انجام شده ولی همچنان کمبودها و هایی وجود داره که امیدواریم ترها و پروژه هایی که وجود داره احتمال بشه و انایت بیشتر به مقوله بهداشت و درمان و سلامت قوم انجام بشه یا ایهالذین آمند تقالله و جاه فی سبیله و اما بعد نقدم أسمى آيات التقدير وأجمل التحيات بالثناء للاتحاد العالمي لعلماء المقابمة حيث بادروا لعقد مؤتمر دولي في بيروت عاصمة لبنان وعقدوا اجتماعهم الأول للهيئة التأسيسية وبحمد الله كان المؤتمر ناجحا في هذه الظروف العصبة في المنطقة العالم الإسلامي وأكد العلماء في بيانهم الختامي في بيروت على أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي المسألة الأولى للأمة ولا بد أن تجعل هذه القضية والمسألة في الدرجة الأولى في سلم العولويات وأن الثورة والمقاومة والصراع ضد كل مظاهر التغيان والاستكبار وخصوصاً الاحتلال الصحيوني والاستكبار العالمي ما زالت مستمره ونحن هنا من مدينة قم نؤكد على تعييدنا تأييد لهذه المواقف الشجاعة والبيان الختامي لمؤتمر بيروت وندعو كل الجهات وخصوصا المثقفين والعلماء لمواصلة هذا النهج. والتجنب عن التفرق والتمزق بالعصبيات العمياء ودعم قضية فلسطين والكفاح المستمر في هذا المجال وأرحب بجميع الإخوة المشاركين في صلاة الجمعة من مختلف الدول وأرجو لهم التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العزل الأجل اکرمه يا الله اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد اللهم انصول الاسلام واحله احله الكفر اقضل خدایا انوات و, و خدا در گزشتگان ما مراجع ازام در گزشته امام بزرگوارمون شهدای گرانقدرمون در گزشتگان از این جمع و همه مؤمنین و مؤمنات را مورد لطف و مغفرت خود قرار بده باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری مراجع ازام را معید و منصور بدار همه مسافران و شرکت کنندگان در اربعین سالار شهیدان را به سلامت بدار همه خدمتگزاران به این حرکت بزرگ را موفق و معید و منصور بدار سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و حضرت ولی عصر ارواحا فدا ابلاغ بفرما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کوفووان احد و السلام